بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین رسول الله على سيدنا محمد و آله قاهرین کل مباحث تجویز ستا بحث امده داشت بحث صفات و مخارج و صفات ذاتی یا حق الحروف و صفات عرضی یا مستحق الحروف اولین بابی که در قسمت مستحق الحروف یا صفات عرضی حروف خاندیم باب تفخیم بود برستم؟ تفخیم خودش دو نوع بود یا تفخیم دائمی آه؟ احیانا برای تفخیم دائمی کدام حروف بودن؟ دایمی خود و برای تفخیم احیانا علف لام را لام را تمام شد درست شد چهار تا حکم برای لام خوندیم حکم اول راجع با لفظ جلاله حکم دوم راجع با علف لام تعریف در اوائلی از ما سوامش راجع با لامه که در اسم ها واقع میشد و چهارمش هم لامه که در افعال واقع میشد درست شد؟ پس امروز انشالله علیف رو خواهیم خواند هم حکم علیف رو از اون سه تا حرفی که گاه، گاهی تفهیم میشدن درست شد؟ پس بین تفخیم الالف المادیت و ترقیقها ها عنوان درسی ما امروز روز هست. آره. تفخیم, ال... تفخیم الالف المدیت اگر با خب ما داریم راجع با تفخیم علف مدی و ترقیق الف مدی می کنیم. درستن؟ آره؟ خب کی علف مدی ترخیم میشه و کی ترقیق میشه؟ برای از جهت حالا ادامه بدیم به این معنی بنویسین خون؟ بنویسین قبل کل شیئین تفخیم الالف المدیتی و ترقیقها تفخیم الالف المدیتی و ها. و ترقیقها بعدش بینویسن که قبل کلی شیعین قبل کل شایئین شایئین لابود دمیم معرفتین لابود دمیم معرفتین لا من من مِن معرفتِن ااا أن الألفَ أن الألفَ أن الألفَ أن ال... امالالف الالف تون تقو تون به حالتایی به آره تون tako sore be halatay tu da vkimas na be halatay a <متحدث> قبل کل شيء لابد من معرفتی که آلفا مادیت تنتقو با نه نه نه نه نه. نویشتیم بنویس نه. آره ال امولا تو یه بعدش بیشتری آل امولا <تصفيق> <تص <في> آل امولا سعی <تص> ما داریم راجعه با علف میخوانیم، با علف مدی علف مدی قبل از اینه که ما بحث خود را ادامه بدیم اینا که که تفکیر میشه، که نمیشه لابوده، لابوده یعنی حتما ناچاره لابوده یعنی معرفت یعنی ناچارم به یک آشنایی برای که چی آشنایی پیدا کنیم؟ <سؤال> ان الالف المدیه اینکه الف ماديه تون تكو به حالتان ادا شود به دو حالت الف ماديه با دو حالت ادا می شود متوجه شدیم؟ یک حالتش حالت فتح هست و یک خالت، یک حالتش حالت اماله است اماله يعني چي <سؤال> فقه چیست و اماله چیست یا گونه ادای فقهی و اماله چی گونه هست ایناله می خانیم. پس علف مدی با چند حالت خونده می شود؟ دو حالت اولش که دم بود؟ الفقه دوم شبه نگفتیم فقط الفقه <تصفيق> ایناله اینا باز میکنیم که الف الفقه یعنی چی <تصفيق> هو عبارتون هو عبارته عن النطقه بله هو عبارته اي قد ايه بله بله هو عبارته عن النطقه عن النطقه بالالف بالالف مركبا مرکبتن مرکبتن چه قانده اکه علمیش على نه؟ خالیه تن خالیه غیر مماله غير مماله غیر چور زینو اسور ترایس که نوشتیم کنیم الف باخ خوانده میشه درست شد آره بعد ف فتحی خوانده میشه یعنی چی هو عبارتون عن نوث بالالف اون حالت فتحه عبارت از عبارتون یعنی عبارت است از ادای با الف که مرکب هست بر یعنی ترکیب شده بر یک فتحه ای که اون فتحه خالص است غیر مومالک هیچ گونه میگی بر سمت سوی دیگه پیدا نمیشه الف فقط فتحه خوانده میشه و هیچ سمت تو سوی دیگه میل پیدا نمیکند معماله یعنی میل درست خب خب حد و اندازش چیست؟ حد و اندازش حالا ادامه شو برای خود بد نیست و حدوه ایو اتا بینمیسین به شما یا نه؟ نه رفشون خوبه وحده اي ایو به يو اتا يو يو واو واو بوله ها واو بوله اس حمزه يو تو يو اتا تايش بازه الف نمیشه يام است مثل هالو وحده ایو يوتا به مقدار نوال مقدار انفتاح الفم انفتاح الفم فم فم فم فم نحو قال قال نحو قال اه نحو قال اه نحو قال انا كانه. نوشتیم؟ در نعم. سعی کنن. ال فقه با فتح ادا میشم و حدو یعنی اندازش. حد و اندازه‌ی نریف ایو تا به ایو تا ای یا ان. ای یا ان نوشتند دیگه نه؟ ان یو تا. ایو آ. این است که آورده شده به اون فعلا مقداری یعنی به اندازه مقدار خوبی دانیم دیگه به اندازه انفتاح الفم یعنی گوشودن دهن فتح گشودن دهن باز کردن دهن سعی شد؟ آورده شد فقط با باز کردن دهن دیگر. مثل قاله و کانه سعی کنن در قاله و کانه به سخته نگاه کنید قاله و کانه <تصفيق> علیف در کجا وجود داره؟ هم در قاله و هم در الف حکمش در این دو تا واجه فرق میشه درست شد؟ آره چرا چون یکش قبلش حرف قاف یکش حرف قافو و کاف است و هر حال قاف از حروف چی هست؟ قلقله و حروف قلقله یا از حروف استعلاق استعلاق خیلی هست درست شد؟ خب، حالا باز بعد انشالا کمه اگر که پیش بریم راجع بایم که این علیف تفخیمیست چی طوری هست نیست که همینجا محلش میتونه باشه میرسیم ولی اینجا خوب دقت کنید وقتی میگیم قا قا قا ک ن ک شد؟ فقط وقتی دهن رو باز کنیم الف با حالت فتحه موجود میشه اینجا هست دیگه درست چه اینجا البته حالت سکون رو داره حالت سکون یعنی که واقع ساکن هست چون اگه واقعا ساکن باشه مشقاً یا مشكاً درست شد؟ ساکن نیست، حالت سکونه دیگه درست شد؟ مدیه یعنی خب کافیه دهم یا فم باز بشن و این حرف به وجود می آید یعنی علف مدی صحیح شد؟ بحث ما راجع با علفه دیگه خیلی علفه پس حالا حالت فتحی رو فهمیدیم که الف یک دفعه با حالت فتح خوانده میشن؟ بله. یعنی فتح اگر به گشودن بگیریم هم فتح به گشودن هست ولی اینجا منظور اینه که فقط با حالت فتحه خوانده میشه، میرسیم به حالت دومش که کدام حالت بود؟ همونالا؟ آره ر ا ا ا ا ا ا ا ا بله، هیا عبارتون إمالة الألف المدية ألف المادية، ألف المادية إلى الياء المادية، الياء إلى المادية، اینجا باله. من الكبرى من الكبرى. هرش صرا سعی کنیم چه میگیم در قسمت که گفتیم. الف تفخیم میشه در اولو قاله و کانه دیگه در قاله الف تفخیمه دیگه صحیح شد در کانهش نیست در حاله میشه در اماله ها هیچ میشه در اماله اماله رو خوب سعی کنید اماله عبارات است مایل پیدا کردن الفن مجید به یای مدی هست اماله عبارت از میل پیدا کردن علیف مدی به سوی یای مدی حالا فرق نمیشه این اماله کبرا باشه یا سغرا باشه یعنی میل پیدا کردنش کبرا باشه یا سغرا باشه کبرا یعنی بزرگ سغرا یعنی کوچیک. اماله کبرا یا اماله سغرا چیست؟ اماله سغرا اینه که الف تبدیل به کسرگرد میشه صحیح شد کبرا یعنی علیف تبدیل و یای مدی میشده به کسره خوب طولانی صحیح شد کسره طولانی یعنی همون یای مدی میشده خیلی خوب مثالش, خوب... مثالش اینجا میگیم حالا میرسیمش تا اینجا فهمیده شد؟ خیلی خوب اون چه که مثالش رو به تعویق افتاده اینجاست دقت کنید ما در بحث روایات و سند چی خونده بودیم؟ در بحث روایت و سند قراررائت؟ کسی در ذهنش هست که فعلا جهان اسلام کدام روایت را رو از همگی میپذیرند؟ آه بو یاد دادیم؟ دا. آه حفظ از کی؟ از عاصم. بررسی از عاصمی کافی که از جمله شاگردان حضرت امیرالله صلیت و سلام هم هست. دکاد میکنن در قراءت که برای حفظ از عاصم هست. اماله صغرا هیچ نیست وجود نداره یعنی حفظ از عاصم اماله صغرا در روایت‌هایش نیست و ما هم اماله صغراوی نداریم یعنی یک علف باشه او را تبدیل به کسره رکنیم متوجه شده؟ اماله صغرا نداره گفته من الكبرا و صغرا اماله سغرا نداره اما اماله کبرا چی داره یا نداره؟ اماله کبرا هم نداره جز یک مورد. متوجه شدیم؟ به قراعت بر روایت حفظ از عاصم اماله سغرا هیچ نداره اماله کبرا هم نداره جز یک مورد. این یک مورد اعمالی خبراست یعنی آلیف آلیف مادی تبدیل به یای مدی میشه متوجه شدیم تبدیل به یایی مدی میشه او یک مورد در کجا هست او یک مورد در سوره یهود آیه چهل و یک هست آن سوره آی آیه چهل و یک در اینجا اعمالی کبراست متوجه شدیم آره آیه این خو؟ و قالر که بوفیها بسم الله مجراها و مرساها این ربی لغفور و از نظر نویشتاری اگر در قرآن ها نگاه کنیم انتوری طوره است خب دقت کنیم سوره آیه چه در نوشتن این طوریه خود مجراها برسو. پس در اینجا یک امال در پیش حفظ از قاسم اعماله سغرا وجود داره یا نه؟ نداره, نداره. اماله کبرا هم نداره جز یک مورد که اونم در سوره مبارکه خود آیه 41 در واجه مجرا که میشه مجری اونم با مدش سایه آه. اینا نکات مهم است دیگه نه تانا زینی ما و با... میخواندیم تفعند دیگه آره اینال انشالله از این ببرد مجراه نمیخوانیم بلکه نه نه فقط میموردیم جوز ندار اصلا ها امواله هیچ نداره امواله کبرا هم هیچ نداره جز یک امواله کبرا نداره جز یک مورد که اونم در همه آیه هست در آره آره خب از باب تفخ مترقق پیشتر در اونجا یک اشاره شد ها در هم واژه قاله و قال گفته بودیم خاله و کانه اینال بینمیسین اما اصل بحث ما بحث و ترقیق دیگه نه بینمیسین که چی همه والالف المدیه تو چی نفته بینیم؟ ایدان اسلام؟ نه ایدان میشون والالف المدیه تو هیه طابعتون لمقابلها. لما قبلها. قبلها لما لام می‌الف و الف المادیت تابع تابعه، هیا تابعه لما قبلها لما قبلها تفخیما و ترقیقا آه، لما لیما قبلها تفخیمان و ترقیتن. شک لیما قبل قبلها بنویسند خو لینه بنویسند لیما قبلها آ تفخیمان لما ترقیتن قبلها تفخیمان و ترقیت تفخیمن و ترقیقا خب با اینمی جمله کل بحث تفخیم و ترقیق الیف کلا شد مدی تابع قبلش هست از تفخیم و ترقیق یعنی قبل از الیف اگر حرف مفخم بود الیف تفخیم میشه اگر حرف مرقق بود حرف چه میشه؟ ترقیق میشه. خلاص شد دیگر. تفقیم. پس در قاله. الف تفخیم ترقیق. تفخیق. در کانه چه؟ ترقیق. و صلی اللہ حالا سیدنا محمد و آلیه قاهرین. آمد.